سی نمی خوام پیششی سو تفاومی بیاد پس یا عذت تو به پیچ به بازی ریش دست من باده چی پس از سر خ شروع میکنم کنم به مقدمه مینش میگه مقش میگه قصدی ندارم داد در راهه می و مرگ ر پاس کاری بکنم مگه فارس شنیدی ها بگم بلند اما ها ها رپ فارس از اول میاد دنیا این بار پشت دیواری نکوتا این گفه واسه کشتنش با کسی هستی طرف که برنده تری سرواز رفتانه لقف شروعی برنده از همیشه تکه به دیوار وقتشه که باوشه نیشه حقی انتظار میکشه واسه بیدار شدن نستی تازه کرپ رپ واقعی رو چوبی که هست بسازه فرقه بر منو نست تو هست غسته که به سازم از نو با دست دا یه میسازم یه دیوار رپ فرقه تو و نصف ماغ غسته که همه لظه از منشه که دور ر ف ساختین یه دیوار. رپ فرقه به من انو نفس توه بس دسته منو به چون که دیگه نزدیکی همه فکر کنن که کارم تفریه ولی بدون که دیوارو ساختن ساخت از خشته بدنم که الان میپوسی از یه آدم تشن اثر همه میکروفون به دست و دنبال ما ان از زهره بکنم موسیقی موسیقی موسیقی کاری که دنیا بکنم بشه مطمئن باش خود کارباز توی دستم مشه منم نشم استاد کاره هر کسی به دود قلمم احتیاج داره جمع ای رپ پارس من احتیاج داره به مرگ برگی در رخت راپ با دیوار ما جوونه زده یه برگ سه بشی فکر کن فقط نگو حرز میره حرفم راپ دست منه مثل هفتیر برم راپ فرقه میره منو نسته توه قس قس ده که بسازمش از, از نو با دستای پینه بسته میسازم یه دیوار راپ فرقه میره دو با نسته ما قس قس که همه لحظه ها از من شد که دوره راپ فاز ساختیم یه دیوار تاخم داره میخوله خونت رو ما با, با با خوب شده بکنه رفتم با بابا هانگاد با همشون یه فوزه کو بینه های نی فوزد اوور اما صدت موش چکه لند چنگی میخرابت کنم روز دیرینم چرنگی بیف کنم یه زرشکی تو رو تخصص رفت تو درد پرشکی جلو و چش کنم میخوری هشت تا وقتیه نگو دیس بخون و پشمات علیه نفس غم انگیز باش سر یو وقتی مغزی میشری سلای روز رو داره دات میزنه ها زیواره دیواره کاره نیکنه تو بشه زیواره دیوانه بند تو ببند و بگی فاس با من یه با ساش ببشت فرمونه رابه با گاز تا دفع رپ فرقه منو نست توه پس بس قصده که بسازمش از نو با دستای پینه بسته میسازم یه دیوار رپ فرقه بری تو با نست ماست قصده که همه لحظه هات از من شد که دوره رپ فاس How That's that set.